آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند دردم نهفته بهز تبیبان مددی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند معشوق چون نقاب زرختر نمی کشد هر کس حکایتی به تصور چرا کنند؟ چون حسن آقبت نبرندی و است آن به که کار خود به انایت رها کنن بی معرفت ما که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. حالی درون پرده بسیفت نمی روید تا آن زمان که پرده پرزه چه ها کنند گفت سنگ از این حدیث به عجب مدار صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند میخور که صد گناه ز اغیار در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران غیورش قبا کنن بگذر کوی میکده تا زمره حضور اوقات خود ز تو صرف دعا کنن پنهانز حاسدان به خودم خان که من خیر نهان برای رضای خدا کنن حافظ دوام وصل مویسر نمی شود. شاهان کم التفاعت a haoul le